در سوره ایلاف یا در سوره قریش الله تعالی این لطف رازک کرده که من اونار که نابود کردم این خیری شد برای شما مردم این شهر لذا در قبال این لطف پروردگار که هر جا امنیت دارید هر جا آسایش و راحتید هر جا راحت میرید از این منطقه به اون منطقه کوچ می کنید، هم برای سفرهای تجاری میرید هم برای سفرهای از کنم که بهاری می روید. لذا در مقابل این نعمت پروردگار بگی شما داده شما رب همین بیت را چرا عبادت نمی کنید عبادتش کنید شکرانه نعمت سجده بلاخره شکر هست الله می فرمن لی ایلا فی قریشن لی فی قریشن. بعضی گفتند اون عطف متعلق فجعال هم هست بعضی گفته اون ضرور لی ایلا ببینید محبت و الفت قریش را کل الیافهم یعنی محبت دارد با چی رحلت الشتاء و الصيف سفرهای زمستانی و تابستانی زمستان به سوی یمن رحلت الشتاء إلى اليمن و الصيف الشام لذا ببینید چطور راحت میرن چرا با این رحلتها ها اینطور دوستی دارد چون هیچ خطری برارش نیست اچ زحمتی برش نیست هر جا مردم از اونها چش میزنند احترامشون را میگذارند لذا به خاطر چی هست ای مردم مکه به خاطر این مرکز توحید است شما در این مرکز توحید آمدید و خدا شریک میگیرید و بتایی را گذاشتید فلیعبدو رب هذا البیت پس باید عبادت کنن رب این بیت را رب این بيترا، رب این خانه مقدس را، الذي اطعامهم من جوع و آمنهم من خوف، آن ربی که انهارا خوراک داد از گروسنگی وادي لم یز را هست، هیچ چینیس، انواع خوراک اینجا یافته میشه، از تمام دنیا خوراکیا متوجه مکه است. اینا را کی دلشون را اون سمت سو متمایل کرد؟ الله و هم من خوف و امان داد اونها را از خوف از خطر یعنی هیچ خطری در راها براش نیست در مکه بعد از اون دیگه هیچ کسی در فکرش حمله به مکه و اهل مکه را ندارد در گذشته مردم غارت میکردن هر کسی که قدرت بیشتری داشت زور بیشتری داشت شهر دیگری را میگرید اما برای مکه هیچ کسی چنین قصدی و چنین نیتی نکرد و هم من خوف اللہ تعالی انها را از خوف هم چی داد امنیت داد یکی دیگر از از بخدمت شما معجزات این بیت این است که الله عز و تا قیامت تا قیامت توفیق نداده و توفیق نمیده که هیچ کسی وارد اون شهر بشه به خاطر اون حرم و به خاطر تقدس اون بیت خوب این نقطه توجه کنید بیت المقدس هم اون تقدس را دارد اما این ویژگی را ندارد ما در سوره بنی اسرائیل میخانیم که بسیاری از پادشاهان و بسیاری از ظلمه دنیا چندین بار به بیت المقدس حمله کردند و مسجد الاقصار با خاک یکسان کردند اما مسجد الحرام را الله عز و جل حفاظت فرموده و در این جا هم اشاره هست که آمن هم من خوف هیچ خطری برای اونجا نیست حتی دجال میاد تمام دنیا را دجال طبق احادیث صحیح و احادیث متواتره آن حضرت صلی الله تمام دنیا رو رومی کند همه جا فساد به می کند همه جا انسان های خوب را میکشد مگر در حرمین شریفین توفیق رفتن ندارد الذي اطعمهم من جوع و امنهم من خوف